ما قوم احرارم از دل مسلمانم ما لشکری اسلام پا بند قرآنم ما قوم احرارم از دل مسلمانم ما لشکری اسلام پا بند قرآنم a umi ahrore, a styl Islam, salmone, molaszkary, słom ما ازبر اسلام خونی بدن رختم ما دام استعمار از به خون کندیم ما ازبر اسلام خونی بدن رختم ما دام استعمار از به خون کندیم مردان از میدم و ما مردان جنگیدم بیگانه کن رو ما از این کشور بیرون راندیم مردان رزمی میدم و ما مردان جنگی دیم بگانگان را ما از این کشور برون راندیم ما قوم احراریم از دیل مسلمانیم ما اسلام پا بند قرآنیم Mocha u mi a rore, az dymu islam po bandy korone. Mocha u mi a rore, az dymu islam po bandy korone. اسلاائقی تقدیر عظمییم ما شرمندهش و تاغود در سر زمینیم ما اس لاقی تقدیر عظمیمت ما شرماند شو و تاغود در سر زمینیم ما و مایم مو استقلال و آزادی قیمیم ما شد باش بر اوراقی تاریخی وظینیم ما مو و استقلال و آزادی قریمی ما شاد باش بر اوراقی تاریخی وزینی ما ما قوم احراریم از دل مسلمانیم ما لشگری اسلام با بند قرآنیم ما قوم احراریم از مسلمان مسلمانه ما گری اسلام پا بند قرآنه ما قوم احراره از دل مسلمانه ما لشگری اسلام پا بند قرآنه ما هر از یوخ و بردگی سرشاره مستم با عشق الهی ما هر از یوخ و بردگی سرشاره مستم با عشق الهی پیروز و کمرانم و در میدان سربازم دشمن شکنم ما با اتحاد و همرنگی پیروز و کمرانم و در میدان سربازم دشمن شکنم ما با اتحاد و همرنگی ما قوم احرارم از دل مسلمانم ما اسلام پابند قرانه Moka u mi ahrore, a zdymu salmonem, islam, po bandy koronek. Moka u mi ahrore, a zdymu salmonem, islam, po bandy koronek. ما حامیان دین هستمونک فرجام ما جنی سرکدم از جو هری اسلام ما حامیان دین هستمونک فرجام ما جنی سرکدم از جو هری اسلام ما پیرای قرآنمونک نامونکن جام ما فاتحی هرسنگرام ملایقین عام ما پیر وی قرآن مونک نامونک انجام ما فاتحی هر سنگر ملایقی این ما قوم احرار از دیل ما اسلام پا بندی قرآنه ما قوم احرار از دیل ما اسلام پا بندی Mocha u mi a rore, az dil islam, salmonę, molaszkary, Mo po bandy korone. Mocha u mi a rore, az